مرس های دانش برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. جناب آقای عزیز بخیر. کامران ابدینی هستم و مهماندار این ساعت برنامه مرسای دانش. این برنامه همونچور که میدونین هفته یک بار در چنین ساعتی توسط همکاری انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی و کیای آرن رادیو ایران به شما هدیه میشه و معمولا در این برنامه با متخصصین عالی علوم مختلف گفتگوی داریم باز هم یادآوری میکنم که چون ترجیح میدهیم که آگاهی ها را کامل و همه جانبه و از نظرات مختلف توسط پژوهشگران و استادان ایرانی تبار به اطلاعاتون برسونیم برنامه های ما بدون هیچ گونه تبعیزی برای سیاست، مذهب، جنسیت، نژاد و روش فکری ارائه میشه برای آگاهی بیشتر از خدمات این انجمن و یا برنامه های مرساد دانش میتوانید به سایت اینترنتی absi.org اسپلش میکنم A برای Association P برای Professors S برای Scholars I برای Iranian H برای Heritage نقطه ORG سهرف اول Organization مراجعه فرمایید کارگردان فنی برنامه ما متابقه معمول شنها باقای آیدین هستند که لطف کردن و این چند دقیقه که من تاخیر داشتم شما رو با موسیقی سرگرم کردن متاسفانه این چرافیک های لس آنجلس هیچ گنه کنترلی در آدم نمیده برنامه امروز یک کمی با برنامه مختلف برنممه های قبلی فرق میکنه و دلیلش اینه که ما میخواستیم اطلاعاتی رو خدمت شما برسونیم راجع به هفدهمین سالگرد برنامه بزرگ دانشجویان و دانش آموزان فارغ تحصیل ممتاز ایرانی که در 18 می در, در Neuroscience Resources Research Building در UCLA برگزار میشه 18 می قبل از اینکه به این برنامه برسم من اول از همه میخواستم که خبری رو بگم که شاید بسیار کسانی که ایران دوست هستند شنیدن متاسفانه دو هفته پیش خبر فوت دکتر ریچرد فرای را شنیدیم همانطور که ایرانیان فراوانی با کارهای ایشان آشنایی دارند ایشان محقق ایران شناسی بودند که علاقه فراوانی به تمدن و ملت ایران داشتند دکتر فرای ماسس مرکز تحقیقاتی خاورمیانه در دانشگاه هاروارد بودند و سالها در آنجا مشغول پژوهش و تدریس در رشته ایران شناسی بودند. ایشون نویسنده بیش از 20 کتاب و پنجاه مقالات پژوهشی راجبه تمدن ایران بوده و در ضمن در حدود 6 سال هم در شهر شیراز زندگی می می‌کردند. بعدش دو سال هم در افغانستان بودند و در دو سال هم در تاجیکستان تدریس میکردن. سه چهار سال پیش هم انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی دعوت از ایشون به عمل آورد و به تقدیر این دانشمند ایرانی ایران دوست به او لوحه افتخاری به عنوان محقق ممتاز هدیه کرد ایشان با سخنرانی خود ملت و تمدن ایرانی را گرامی نودند. به تقاضای خود ایشان قرار است که جسد دکتر فرای در شهر اصفهان به خاک سپرده شود. روحشان شد خب حالا برگردیم به یک خبر خوب که اول برنامه راجبش کمی صحبت کردیم برای اگر اجازه بدیم بریم به آگهی ها و بعد از آگهی ها برمی خدمت شما پاسارگاد پروڈکشنز تقدیم می کند از از ها انتظار احمد رزا نبیزاده با عاشقانه های می انگیز و تازه شنبه دوازدهم هامه اپریل زبان تیاتر موس در حسرت آبوش تو هستم بقی کن از عظ بروی تو مستم بغلم کن. شنبه دوازدهم آپریل احمد رزان نبیزاده لا این کنسرت به همراه ارکستری 24 نفره جزء نبیزده سبک تئاتر شنبه دوازدهانو آپریل تهیه بیلیت در تیکت ماشین و کلیه نرکزای ایرانی برای اطلاعات بیشتر با صفر هشت ایرانیان و یا و نه صد پیلات مارکت با تبریک موعد پسخ و با تشکر از حمایت هموطنان عزیز در طول سال این بار نیز تمام مایت ایام پسح را با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت زیر یک صفح برای شما تهیه نموده است پیلات مارکت برای رفاه حال مشتریان محترم و پاکینگ رایگان در اختیار شما قرار میدهد فراموش نکنید. مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری میکند کند. یا و دوستان عزیز برگشتیم به برنامه های دانش. همون که قبل از آگهی به شما اطلاع دادم هفدهمین برنامه بزرگ داشته دانشجویان و دانش آموزان فارا تحصیل ممتاز ایرانی در 18 می در دانشگاه UCLA Neuroscience Research Building برگزار خواهد شد از ساعت 3 تا 6 بعد از یک روز یک شنبه هست و همون که گفتم این هفدهمین همین برنامه که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 به خاطر این کمک اولا ما باید شناسایی میکردیم که چه کسانی هستند که اولا ممتاز هستند و در رشته خود بسیار کار میکنند. در ضمن منظورمون این بودش که به دانشجویان و دانش آموزان ایرانی بگیم که نسلی که از ایران اومده و تقریبا نسل اول و اکثریت نسل اول ایرانیان مقیم آمریکا هست توجهی به دانشجویانی و دانش آموزان ایرانی که تقریبا نسل دوم هستند در اینجا داره همونطور که موسسات و افراد خیر مختلفی هستند در همین آمریکا شما میبینین که همیشه توسط ارائه کمک هزینه تحصیلی و یا کمک هزینه کمک, کمک که برای هزینه دانشگاه می‌کنند در این معسیسات معروف هستند فرزن اگر اسم کسی رو روی یک ساختمان دانشگاه می و یا اسم کسی را رو در روی پلوی اسم دانشکده می بینین به خاطر یعنی که این اشخاص میلیون ها دلار و یا صدها هزار دلار کمک کردند که بتونن نسل بعدی حالا هر کشوری هست را کمک کنند که به نتیجه بهتری برسن. و برای اینی که ما در اون موقع نمیخواستیم که اون اثرات منفی که به خاطر بالاخره سیستمی که بین دولت مختلف وجود داشت یک ذره ایرونی رو به خودم به قول تروریست و نمیدونم منفی جمعه میدادن دانشجویان ما میخواستیم که ذره حمایتی کرده باشیم که بتونن پیشرفته بیشتری بکنن واسه همین ما مشغول شدیم که شناسایی بکنیم از دانشجویان و بعدا دانش آموزان فارغ تحصیل ممتاز ایرانی دانش آموزان برای اینی که وارد دانشگاه می و کسانی که ممتاز هستن همانطور که از معسیسات مختلف ممکنه بتونن سکالرشیپی بگیرن و یک کمک از اینهی بگیرن انجامن اصلادان و پجویشگران ایرانی میخواست که حمایتی بکنه از اینا که بتونن هزیناهاشون رو یه جوری بهتر بتونن کنترل کنن در دانشگاه و یا در دبیرستان جور که مطلع هستین هرچی از این لها افتخار بیشتر باشه و این هدیه ها بیشتر باشه بعدا برای آیندهشون که بتونن رشته بهتری انتخاب بکنن و یا کمک از این های بیشتری بگیرم خیلی بهتره. سال اول خاطرم هست که ما تونستیم چون که اون موقع دسترسی به رادیو ایران نداشتیم و تقریبا همه گفتم 17 سال پی 16 سال پیش بود و رادیو ایران اون موقع اینجا نبود و در ضمن سیستم های و اینام زیاد خوب مجوری که الان کار میکنه کار نمیکرد ما تونستیم اون موقع در حدود 19 تا دانشجوی ممتاز ایرانی رو شناسایی کنیم دانشجو به خاطر اینی که بیشتر اینا کسانی بودن که در دانشگاه ها بودن و ما استادان و پژوهشگران ایرانی هم دسترسی به کلوب دانشجویان ایرانی بیشتر داشتیم بعد از اینکه ما برنامهمون رو شروع کردیم در رادیو ایران تونستیم که بیشتر با جامعه ایرانی در تماس باشیم و به خاطر این بتونیم با بیشتر افراد و کسانی که بچه هایشون در دبیرستانها تحصیل می کردن و فاراد می هم بتونیم ارتباطی برقرار کنیم به خاطر این در حدود این 17 سال من داشتم خودم حساب میکردم سالی در حدود 100 نفر رو به عنوان حد متوسط بگیریم در حدود شاید مثلا 1600-1700 نفر دانشجو و دانش آموز ممتاز ایرانی توسط این انجمن در این برنامه معرفی شده لوه افتخار گرفتن و در ضمن از سیستم های مختلفی هم که وجود داره برای گرفتن کمکزینه ما استفاده کردیم از انجمن‌های مختلف ایرانی تقاضا کردیم که با ما همکاری کنند افراد خیر ایرانی با ما همکاری کردند و تونستیم که به عنوان چه جایزه و یا چه کمکزینه به بعضی از این دانشجویان کمک هم بکنیم در ضمن توسط این پولی که تهیه شد برای کسانی که در دانشگاه هستن هم توانستیم به عنوان لون به عنوان وام تحصیلی بدون بهره یک مقداری تهیه کنیم که دانشجویان مخصوصا دانشجویانی که در حال تمام کردن برنامهشون هستن بتونند که از این کمک از این استفاده کنن پارا تحصیل بشن زودتر به کار مشغول بشن و بتونن این وامو پس بدن که بعدن بتونیم ما برای کسان دیگری این از این استفاده کنیم به هر حال شناسایی این افرادی که ما بهشون دانشجو و یا دانش آموز ممتاز ایرانی میدونیم توسط بیشترش توسط خود شما انجام میشه دلیل این برنامه اینه که من از شما خواهش کنم که با انجمن اصلادان و ایرانی تماس بگیرین توسط وبسایت ما وبسایت ما هستش apsih.org شما اونجا تشیب ببرین یک لینکی هست که راجبه این برنامه عکسش اونجا هست اونو فشار بدین اگر کسی را میدونید که دانشجو و یا دانش آموز ممتاز ایرانی هست و امسال داره فارغ تحصیل میشه یعنی در سال تحصیلی 2013-2014 داره فارغ تحصیل میشه و ممتاز هست حالا ممتازی یعنی چی راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد در زمتون سایت مام هست اگر واجد شرایط هستن اسم نویسی بکنید بعد از اسم نویسی مدارک فرستاده میشه و ما از این افراد درخواست میکنیم دعوت میکنیم که در این برنامه ما شرکت کنن و به اینها همونجوری که گفتم لوحه های افتخار و هم جوایزی تقدیم میشه حالا چگونه میتونیم بفهمیم که این افراد ممتاز هستن یا نه همون که گفتم در وبسایت انجمن انجامن هست اما اگه اجازه بدین من یه کمی بیشتر راجبش صحبت بکنم اول از همه که هم توضیح داده شد این افراد باید فارا تحصیل سال 2013-2014 باشن یعنی همین امسال تا آخر می و یا پارسال. تا به سون و یا فال قبل اینا فار تاثیر شده باشند. البته دانش آموزان همه دارند آخر امسال فار تحصیل میشن از دبیرستان. کسانی که از دانشگاه ف تحصیل میشن باید از دانشگاه های شناخته شده ای باشند که توی کالیفرنیا هستن و سازمان های مهم، و, و کالیفرنیا اجازه رسمی تدریس به اونها داده و اینها میتونن مدارک مختلفی رو به دانشجوان بدن باید برای چهار سال آخر باشه یعنی برای کسانی که میرن برای تکنیکال کالج و یا کسانی که میرن برای جونیور کالج های کالج های دو ساله نیست کسانی که برنامه لیسانسشون رو تمام می‌کنه حالا این لیسانس میشن میتونه بشه BA بی Bachelor of Arts یا BS یا Bachelor of Science بعدن کسانی هستن که وارد برنامه فوق لیسانس شدن و دارن فارغ التحصیل میشن یعنی کسانی که هستن که MS Master of Science یا MA Master of Arts دارن می‌گیرن به اضافه مسترهای دیگه ای وجود داره که MS بهشون نمیگن ممکنه بهشون بگن MBA Master of Business و یا Master of Public Health MPH یا مسترهای مختلفی وجود داره باز هم اینا از دانشگاه های شناخته شده دانشگاه های شناخته شده باید بیان تقاضا بکنن رجب ممتاز بودن صحبت خواهم کرد این دانش... کسانی که دارن از دانشکده‌های کالیفرنیا فارغ تحصیل میشن با لیسانس و فوق لیسانس میتونن شرکت کنن اگر ممتاز بشن ولی کسانی که دکترا دارن میگیرن این کسانی هستن که از تمام کامر... تمام آمریکا میتونن شرکت کنند یعنی دکتراشون از هر دانشگاهی در آمریکا اگه گرفته باشن میتونن در این برنامه شرکت کنند. متاسفانه کسانی که از بیرون آمریکا دارند دکترا میگیرن ما نمیتونیم در این برنامه شرکت کنیم به خاطر قوانین که در کالیفرنیا وجود داره پس مال دکتراب شد تمامی دانشگاه های املیکا. البته در نظر داشته باشین کسانی که در این برنامه شرکت میکنن باید حضور داشته باشند در اون برنامه 18 می و با کاغذ و نامه نمیتونن شرکت کنن همه کسانی که مخصوصا جایزه دریافت خواهند کرد باید در اون روز در اون برنامه شرکت کنن برای اینکه یکی از شرایط جوایزی که افراد خیر و یا سازمان ایرانی برای ما گذاشتن و اسم این سازمان ها و افرادم خواهم گفت اگر اجازه بدیم بریم به آگهی ها بعدش برمیگردیم اسم اینا رو بهتون میگم. چه لباس قشنگی. خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی. آره، آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام. دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرگ‌های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ‌های ریز و سیاه پاهام گرفتم. آره، چه خوب. شماره دکتر مسعودی رو به من بده. هر چه زودتر من هم از شر این رگ‌های زشت پاهام و دردشون خودم خلاص بشم. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رکابی واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک I در مدت زمان سی دقیقه هر رکه پارا درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پیپیو و مدیکایر. دکتر رامتین مسعودی در بیلیهیز و ام سینو. 300 ده 855 701 701 300 ده 855 701 70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 از Universal City California. اینجا K I R Simi Valley Los Angeles. دانش برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. دوستان عزیز باز هم بسراتون به خیر کامران آبدینی هستم راجب برنامه هفته همین بزرگ داشته و دانش آموزان فرا تحصیل ممتاز ایرانی دارم صحبت میکنم این برنامه در 18 می در UCLA برقرار خواهد شد راجب شرایط این برنامه هنوز صحبت نشده ولی همونجور که قبلا گفتم کسانی که دبیرستان میرن، و کسانی باشند که از دبیرستان‌های جنوب کالیفرنیا فارغ میشن امسال و کسانی که دانشگاه میرن، کالیفرنیا دارن, دارن فارغ میشن کسانی. و کسانی که دارن دکترا میگیرن میتونن از تمامی آمریکا شرکت بکنن به شرطی که در اون روز بتونن در این برنامه باشن. ما داشتیم کسانی که مثلا فرزن دارن دکتورا می گیرن حالا در پزشکی در هر رشته دیگری و اگر نتونن به خاطر مسافت در این برنامه شرکت کنن بهتری که اسنویسی نکنه چون در اون روز باید در اون برنامه باشد سازمان های مختلفی این برنامه رو از این برنامه حمایت میکنن سازمان های مثل انجمن نیپاک در اورنج کنتی انجمن زنان ایرانی آمریکایی ایرانی امریکن وومن اسوسی انجمن پزشکان، آکادمی پزشکان ایرانی افراد خیر دیگه هم وجود دارند که من اسمشون رو اجازه ندارم بگم ولی خب انجامن های مختلفی وجود داره فرزن انجمن فارا تحصیلان فنی هستن انجمن فارا دبیرستان البورس هستن کسانی هستن که فارا هدف و یا خارزمی هستن و با هم دیگه شرکت میکنن و یک اواردی یک ای به دانشجویان میدن به اضافه اون انجمن مهندسین و راشدکتای ایرانی هستند. به هر حال انجمنای مختلفی وجود داره که این کار رو انجام میدن درزم گروهی هم هستند که به اسم عزیزی یک جایزه و یا اسکالشیب کبنگ از رو درست کردن فرزن به اسم پدر مادر آلا، هر کس در خانواده که با این اسم ما سالهاست که داریم جوایز مختلفی رو به دانشجویان و دانش آموزان ایرانی میدیم و شرایطشون هم خودشون میتونن بذارن فرزن کسانی هستن که کمک از رو فقط برای کسانی که میخوان در رشته فرزند پزشکی ادامه بدن گذاشتن یا اینی که در رشته رقص گذاشتن و یا اینی که رشته مهندسی این کارو میکنن و یا باید فارات... کسی فارات اصیل دانشگاه فندی باشه که این کارو بکنه بهتونه شرکت کنه خلاصه تمام این شرایطو ما در وبسایتمون گذاشتیم که شما میتونین برین نگاه بکنین و اگر کسی رو میشناسین که امسال داره فارات اصیل میشه چه از دبیرستان و چه از دانشگاه خواهش میکنم این اطلاعاتو بهشون بدین ما در این وسط ما معمولا در حدود صد نفر رو انتخاب میکنیم به خاطر جا و مکان و مدتی که ما میتونیم برای این برنامه بذاریم قدرانی میکنیم البته قسمت بسیار جالب این برنامه اینه که در اول برنامه از دو یا سه نفر اشخاصی که در جامعه ایرانی آمریکایی نقش فراوانی داشتند، جوایزی هم به اینها لوحه افتخاری هم به اینها میدهیم کسانی هستند که میتونن به قول آمریکایی‌ها رول مدلی باشن الگویی باشند برای دانشویان و دانش آموزان ایرانی این اشخاص کسانی هستند مثل همین دکتر ریچارد که راجبش صحبت شد در ایران شناسی جناب احسان یارشارتر که باز هم راجبشون صحبت شده قبلا آشنایی دارین ایشون هم ایران شناس و برخالی کسی هستن که آشنایی مردم ایران آشنایی فروانی با دارن به اضافه کسانی که دانشجویانی که تازه فرا تحصیل شده بودند و در عرض چند سال به افتخارات فراوانی رسیدند مثلا همین پار سال خانم مریم روفوگران جزو کسانی بودن که از ایشون غلط دانی شد و ایشون الان وایس پرزیدنت کوالکام هستن و کسی بودن که اختراعات فراوانی داشتن و شاید مثلا 7-8 سال پیش خودشون به عنوان یک دانشجو در این برنامه شرکت کرده بودن در ضمن اینم بهتون بگم که من چند نفری رو داریم که از دویرستان که وارد تحصیل شدن ممتاز بودن بعدن دیسانسشون رو گرفتن جزو ممتازا بودن از ما جایزه گرفتن بعدن همینجور فوق لیسانس و, و دکترا و این بسیار باعث شادی ماست که میبینیم که همچین علاقه رو دارن که به این با این برنامه‌ها رابطه داشته باشن شرکت کنن و خودشون رو در جامعه ایرانی بشناسن از لحاظ ممتاز بودن اگر اجازه بدین شرایطش رو بهتون بگم کسانی که در دبیرستان هستند باید SAT امتحان SAT شون 1850 داشته باشه مینیموم البته کسانی که شرکت کردن در این چند سال همشون بالای دو هزار بودن. حالا برای اینکه که این بالای 2000 ش... یعنی چی؟ یعنی که در حدود شاید مثلا دو سه درصد دانش آموزانی که این امتحانو میدن از دبیرستان فارد تحصیل میشن بتونن این نمراتو بگیرن و واسه همین کاملا ممتاز هستن. به اضافه اون از دهاز معدل، باید معدل بالایی داشته باشن، معمولا این ما میگیم معدل سه ممیز هشت از چهار. اما در اصل کسانی که این برنامه شرکت میکنن و دعوت میشن که شرکت بکنند، کسانی هستند که معدلشون بالای چهاره، من خاطرم هست که یه دفعه معدل 4 ممایز 87 داشتیم حالا شما ممکنه بپرسین که چطور میشه یکی معدلش بالای 4 باشه موقعی که 4 ماکسیمامه دلیلش اینه که یه سری کرسایی هستش توی دبیرستان که به عنوان AP معروفه و این کورس‌ها رو اگه کسی برداره که معدل کرسای دانشگاهیه این م... این کورس‌ها اگه کسی برداره موقعی که A میگیره Aش به جایی ک چهار امتیاز باشه پنج امتیاز میشه واسه همین موقع که تمام، اگر کسی بیاد مثلا 20 تا از این کورساور داره که همه اینا هم ای بشه یه مرتبه معدلش میشه تقریبا چهار و چهار ممیز هشت دیگه پنج نیست چون که هیچ هیچ بیرستانی نیست که همه کورساش AP باشه که من میشناسم و این اشخاص کاری که باید بکنن اینه که معدل ریز نمراتشون رو برای ما بفرستن نتیجه امتحان سیتیشون رو برای ما بفرستن به اضافه اینی که اگر جوایز دیگری گرفتن اگر تقدیرنامه های دیگری گرفتن اگر کارهای دیگری کردند، ما مثلا همین شخصی که معدل شهار ممیز هش بوده در زم پیانو هم میزنه در زمین توی مسابقات شنای مدرسه شرکت میکنه از این افراد وجود دارند خوشبختانه توی مخصوصا جامعه ایرانی و ما از اینا دعوت میکنیم که صد درصد در این برنامه شرکت بکنند پس تمام این مدارک هم برای ما از توسط, توسط همون وبسایت ما برامون خواهند فرستاد بعد از دبیرستان البته تعداد کسانی که از دبیرستان شرکت میکنند و ما دعوت میکنیم چون که فقط ماکسیموم میتونیم در حدود 100 نفر رو ما دعوت بکنیم در حدود 10 درصد یا ده نفر از دانش آموزان خواهند بود کسانی دیگری که میتونن شرکت کنند کسانی هستن که لیسانس و فوق لیسانس دارن اونایی که لیسانس و فقالیسانس دارن باید معدلشون بالای سه و نیم از شهر باشه حالا بر که شما توجه بکنین که سه از چهار یعنی چی بسیار میتونم بگم سختره که یکی معدلش سه و نیم از چهار باشه در, در دوران لیسانس تا اینی که فوق لیسانس چون که بالاخره موقعی که فوق لیسانس میان کسانی که فوق لیسانس میرن کسانی هستن که توانایی فوق لیسانس رو دارن انتظار از اونا اینه که بین A و B بین چهار و 3 بگیرن. مثلا این سه بگیر بسیار آسونه. و برای کسانی که لیسانسشون رو دارم نگیرند سونیم بسیار سخته واسه همین تعداد اینام شاید مثلا از اون صد نفر که گفتم بیشتر از سی چهل نفر نباشه. حالا. اگر اجازه بدین رجبه کسانی که فاقالیسانس دارن میگیرن صحبت بکنم اونایی که فوق لیسانس میگیرن بعد معدلشون بالای سه مامایز باشه و سه مامایز یعنی اکثر کرساشون رو ای گرفتن بعضیاشون هم دارن B میگیرن و امسال هم دارن فاقال ترسین میشن از هر دانشگاهی در کالیفرنیا در کالیفرنیا میتونن شرکت بکنن چه دانشگاه خصوصی و مثل یو اس ای و چه دانشگاه ایالتی مثل یو سی سیستم و یا یو اس سی. باز هم تذکر میدم که این برنامه برای کسانی که از جونیور کالج ادرن فارغ التحصیل میشن نیست. این دانشجویان باید مدارک خودشونو اگر جایزهای دیگه ی گرفتن دوهای افتخار دیگه گرفتن برای ما بفرستن توسط همون وبسایت ما آخرین گروه گروهی هستن که دارن دکترا خودشونو می گیرن. کسانی که دارن دکترا می در هر رشته دکترا پزشکی ممکنه باشه با عنوان MD دی دی اس به اضافه پی ایچ دی و دکترهای رشدهای مختلفی هم وجود داره که من الان اسمش جلوی دستم نیست که بتونم راجبشون صحبت بکنم اینا برای من تقاضا همه رو میفرستن برای ما و موقعی که اونا آمدن ما با معمولاً با استادهای مشاورشون صحبت میکنیم نامه که از استاد مشاور میاد رو رویو میکنیم و از ایشون تقاضا میکنیم که در این برنامه شرکت کنند. پس این چهار گروه که صحبتش کردم دانش آموزان، دانشجویان لیسانس و دانشجویان فوق لیسانس و کسانی که دارن دکترا میگیرن و امسال تحصیلی دارن فارغ التحصیل میشن در این برنامه میتونن شرکت کنند. اگر وقتش هست قبل از اینکه برنامه به موضوع دیگه صحبت بکنم بریم به آغاییا و بعداً برمیگردم. دکتر رزاتورشی زی با هات تجربه در بکاربردن جدیترین های اлемент به زیبایی، مانند در رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست سرطان بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتکس، دیسپورت، جوفدرم، راستولین، رادیس و زیومن در سه منطقه انسینو غلند و اروان. دکتر رزاتورشی زی به مناسبت آغاز بهار، تغییرهای ویژه برای مراجعین محترم تبدیل می‌دارند. ۸۸۹، ۹۲، ۹۲ و ۹۴۹، ۵۵۲، ۲۶۵. 70 ای ای سنگجلس مرز های دانش برنامه از ارجمن اوستادان و پژشگرام ایرانی دوست تا نزیض کام هستم. در برنامه مرسای دانش راجب برنامه بزرگداشت داشته دانشجویان و دانش آموزان ممتاز ایرانی داشتم صحبت میکردم که این برنامه در روز 18 می، یکشنبه شمبه 18 در یو سی ال ای برقراره راجب چارد گروهی که میتونن در این برنامه شرکت کنن صحبت کردم در زمین میخواستم خواهش بکنم از افراد خیر و یا سازمانهای ایرانی که اگر میخوان با ما همکاری بکنند برای احتای هدایا و یا جوایز و یا کمک, کمک هزینه به این دانشجویان و دانش آموزان ممتاز ایرانی و کمکی باشند برای آشنایی بیشتر آنها با گروه های سازمان های ایرانی با ما تماس بگیرن در ضمن اگر افرادی هستن که میخوان همچین جوایزی رو بذارن برای به اسم مثلا فامیلی دوستی یا هرکی با ما تماس بگیرن که این برنامه رو بهشون بگیم چیکار میتونن بکنن در ضمن یادآوری میکنم که این سازمان ما سازمانی هستش که از لحاظ مالیاتی کمک میکنه برای کسانی که اگر هدیه بدن از مالیاتشون کمتر بشه خب اگر سوالی نیست به خاطر اینکه هنوز برای ما ایام عیده از آقای آیدین خواهش کردم که بریم یه سری موسیقی بزنند که بیشتر شادمانی باشه تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم مرزهای دانی و پشنشگران ایدانی